تسلیم قردیسیو نگه نبیدی این ردامی پیش ندودم که بخرایی به خوابم نبیده کم کسی تو رو دستم بلند شد پس به احتمال زیاد برنده ای دیگه ایشالا. فقط اینو اول صبح ببره داره و چه تحبیل بده من کار دارم نمیرسیم سلام چطوری؟ نه اه... نه کار خواست نداشتن کجا؟ من میرم من میرم کار بکاری دوست میخواستم آقای پیشمان شریفی رو دید چند از سر تو بحرامه ده توم هم. به اضافه ای اینکه بعدا من بشم هم کار اونجا. این دیگه مشکل شماست ارز کردم این دیگه مشکل شماست آقای بحرامه یا شما به من اعتماد میکنین رقم منو تو موزایل اعلام میکنین یا اون رقمی که خودتون فکر میکنین درسته؟ از این دولتی خارج نیست میفهم. بله می‌فهمم آقای بحنامی من تماس می‌گیرم با تو. شماتون همینه؟ خدافز خدافز این کیه؟ نمی‌دونم والله این همه سال اصلا سابقه نداشه یه خانوم دیدن آقا پیش ما اه. خیلی؟ تا شلا آره سک کنم امروز میری قرار داده خونر ببندی؟ چطور؟ مدارکو رو بهم داد یه رقمی دادی که عمرن کسی بتونه بده نه بابا چرا گفته؟ هفت اصد خیلی ها آره بابا عمرن اون بهر رو بتونه رو دستش بالن من برم ببینم عقا محفظه چی کارم داره؟ اینجا <تصفيق> که نمیشه حرف شما به چه حقی منو تاقیب می چی چیکار منی؟ من شوهرت بودم بودی من فقط ازت یه فرصت میخوام مطمئن نمیتونم نظر تو عوض کنم چهار سال اصلا جدا شدی من هم زندگی میکنم ولی من هنوز دوستت دارم هنون نتونم فراموششت کنم این هم از بدبختیته حال بدبختم ولی زندگی ما به خاطر تو زیر رو کردم معلوم نیست چیکار کردی به همه نشون پولدار شدی نشون بدم باید سند بیارم تو باور کنی من نمیدونم اون پول از کجا آوردی برا من مهم نیست همون موقعشم پول باست من همیتی نداشت پس واسه چی ازم جدا شد چون تو حاضری واسه هدفت هر چیزی رو بذاری زیر پات چون من واسه خودم نمیخواستی پول بابام واسه مهم بود چون مرد زندگی نبودی من فقط ازت یه فرصت خواستم همین فرصت؟ تو اینقدر رزلی که پا شدی اومدی دنبال ما اون عکس گرفتی بعد در کمال وقاهت رفتی نشونو بابام دادی من میخواستم بفهمه دخترش داره چه اشتباهی میکنه من دیگه اشتباه نمیکنم هم لازم نکرده نگران من باشی حالا این موتور سواره مرد زندگیه اینطور عبتی اون بدرام که فکر میکنی با وجود نیست. وقتی فهمید من شوهرت بودم و هنوز بسرد دارم چرا اکسوال عملی نشون چرا تو سوراخش؟ نگفته بهت؟ واقعا نمیدونم تو چی اونو به من ترجیح میدی. آقا راستش با تو قابل مقایسه نیست. اون یه پسر زحمتکش و شریف نمیشه تو یه الافه مفخور. من اونقدر میام و میرم تا راضیت کنم. ما راش دوست دارم. چوامه گاببر رئیس، اتا بازی بازیناک. من آدمی نیستم که به این راحتی ها را کنار بکشم با یه وام هم نمیخوام راجع به گذشته حرف بزنن هر بوده تموم شده رفته میخوام الان همون ببینم الان من یه مرد چل سالم وضعیت مشخص همه چین رو براه فقط یه خودمو هم شده مسئولیتت هم بیشتر شده تو داری به تنهایی از پدرت نگهداری میکنی فکر میکنی بتونی این کار انجام بدی کار عجبی نیش با هموندار ریاض پدرم درمادر مراقبت میکنی دیگه بله ولی اون از پس کاراشون برمیان کار شخصشون خودشون انجام میدن من فقط گاهی میبرمشون دکتر یا چه بابام خیلی از کارشون انجام میده خودش ولی تو از قول دکتر یه چیزی گفتی که نگران کننده است خواهی کار کنی؟ صبح بهت گفتم ستر گفتی ولی من واقعا میخوام بدونم فکر کردی یعنی چی؟ نگهداری از یک کسی که نمیتونه رابره، بره نمیتونه کارهای شخصش را انجام بده با این همه مشغله که تو داری فکر می‌کنی که از پسش بر بیای؟ باید از پسش بر بیام. چجوری؟ گفتی پرستار نمی‌خوای براش بگیری. خب من به کسی اعتماد ندارم. صدایی که نیست، می‌خوای چیکار کنم؟ خودم یکی که آشنا باشه بهش میگم بيت پیش بابا بمونه. من الان وقتی دارم تو این سن ازدواج می‌کنم، مطمئنا می‌خوام خیلی زود بچه دار بشم. تو هم همینطور؟ تو فکر میکنی من با تو با این همه مشغله و یه بچه میتونیم این شرایط سختو رو بگذونیم داره پدرم ما رو تنهایی بریم مادر بزرگ کرده من نمیتونم روش کنم؟ نبایدم بکنی منم بودم این کارو نمیکردم؟ هسته گه نمی آید. اونجور که تو گفتی بیا نمیشد نیوم اینگه می میشد نمیومدی نمیخواای حرف بزنی حرفی ندارم تو همون آرش چند سال پیشی راج به احساست حرف نمیزنی خشم و نرااحی تو نشون نمیدی بعددم می یه و کنار میکشی میری من میدونم کامی یارمده مر منتظر یه فرصت بودم تا همه خودم خودام بهت بگم. کی؟ چه فرصتی؟ ما چند بار تو این مدت با هم بیرون رفتیم. ماما تو خونه این کسی دیگه ای عکس تو روی دیوار که بفهمه ان قبلن ازدواج کردی تو جای من بودی چه فکری می‌کردی؟ فکری نمیکردم میرفتم سراغ طرفم باشه حرف نمی‌زدن. نه اینکه فرار کنم. لابد دلیری دلیلی داشت که تو الان راجع به این موضوع حرف نزدی. شو آدم هیچ‌وقت نمی‌خواد بگه. آرش خودت هم اینطوری نیست من حتما بهت میگفتم ولی هنوز چیزی از تو نشنیده بودم چجوری میتونم بی مقدمه بیام بهت بگم من قبلاً عقد کردم چجوری بهت بگم وقتی از احساسات نسبت به خودم اطمینان ندارم من هنوزم نمیدونم حس واقعیت نسبت به من چیه اون موقع که گذاشتی رفتی فقط احساست بیهودگی و هغارت میکردن چون فکر کردم کسی که دوست دارم به من توجه نداشت گذاش رفت من روحم هم خبر نداشت تو رفتی من هم دیگه ندیدمت اولین کسی که اومد خواستگاریم کامیار بود ما حتی زیری سقفم نرفتیم جدا شدیم اول که دیدمت خیلی خوشحال شدم ولی تو هنوز همون آرشی هیچ فرقی نکرد این آرش به درد من نمیخوره سلام سامانم سنگی زدم رقل موضوعی داره بهتون بگم چه دفتر خوبیه شغل جدید مبارک یا اینم شیر نشی مطمئنه از تو بید نخوردی دیگه پارش چیزی هست تو الان خیلی برات مهمه که قبلا عرفت کرده برایت مهمه که اون یارو هنوز دوستش داره رونا چی؟ اونم دوستش داره خب دیگه از وقتی رونا دوستش نداره دیگه چه اهمیتی داره حالو سلام بابایی خوبی دارم میان یه سر اومدم پیش همو آرش میان خونه نه شام نخوردم بله میان با هم بخوری باشه قربونت دارم خود افس. ببین آرش از همون موقعی که تو رونا رو دوست داشتی هی بهت گفتم برو جلو نرفتی این کار نکردی گفته خیلی پول دارن سطحشون به سطح ما نمیخوره الان دوباره پیداش کردی آخه مگه آدم چند بار تو زندگیش یکیو که دوست داره از دست میده دوباره پیداش میکنه؟ با زندگی اینقدر هم سخت که تو سخت میگیریش یکیو دوست داری برو باش، ازدواج کن خلاص شش سال زندگی رو از دست دادی بس نیست بنام بچه داشتی من برام دیگه بچه منتظره تو هم سانده بیچه دو خورم انا ببرش من خونه تو اون موقع می میری که اشنگی خدا حافظ خدا نگفته بود نواله من خبر نداشتم الان اولین باره از شما میشنبن نمیدونم این پسره یه دفعه سر و کلش از کجا پیداش چنه قد بدبینیش ادام خوب باشه اصلا از نظر مالی به ما نمیخورن یه ماشین زیر پاش نیست با موتور کار میکنه گفتی از همدنشگده یه ایرون اینطور میگه نمیچه اینطور میگه یه جوری میگه انگار میگه من دیگه به کسی اعتماد ندارم رونا کسی نیست دخترته میخواد همه تلاها و سکه بفروشه بده به این پسره راستش اون موقع دوران دانشجویی رونا از کسی خوشش میومد. منم که بی خبر الان چه خبری هم نبود رونام از این روا نداشت از این حرفا بزنه اینم من انقدر کافه شدم گفت کجا بوده چطور الان سر و پیدا شده حالا شما چرا عصبانی نه اینکه ما ناراحت بودیم چرا رونا دیگه از کسی خوشش نمیاد نمیخواد ازدواج کنه نه الان که از یکی خوشش اومده عوضی اینکه خوشحال باشیم ناراحتیم خوشحال باشیم اصلا معلوم از این پسر کیه خب از رونا بپرس تو مادرشی شما هم پدرشی اشتباهی رو که در مورد کامیار کردم دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم. برو تحقیق ببین مادرش کیه پدرش کیه خانواده‌اش کین شما که بلدی ماشالله میگم رو موتور کار میکنه. انگار یادت رفته خودت چند وقت با ماشینت مسافرکشی میکردی. اونم چند ماهی کار کردم واسه شده بودم. بعدشم خیلی سری خودمو جا موجود کردم. خب شاید این پسرم شرایطش همچی چیزی تو این موقعیت درس خوندن کار کردن باز عرضه داشته که بره دانشگاه. اون اندر اس سلام سلام سلام اصلا خوز شو خوز شو شو... همونی که دانشگاه دوستش داشتی همونه پس چرا به من چیزی نگفتی با من این همش دارم میشنبم به وقتش خودم میگفتم بگه ماغش بود خب اون اصلا چیزی به من نگفته بود من چی به شما میگفتم ولی اگه میگفتی خیلی خوب من خوشحال شدم ببطره الانم خوشحالمنا تو این بلبش رو به هم ریختگی؟ هیچ کاری راحت جلو نمیره؟ همیشه بالا پایین داره اما شما کدوم ترفی ندیدیم بابا چه برخوردی که؟ خب اون پدره باید رفتارشون جوری باشه منم مادرم یه جور دیگه فقط تو باید با من حرف بزنی عداقل من بفهمم چی به چیه ؟ بعد چند سالیه او سر و کلش پیدا شده تو دفتر من برای کار یه برنامه طراحایی کرده داره دنبال سرمایه گذار میکردیم پس چه رو موتور کار میکنه؟ نمیدونم نپرس مهم هم نه بود ولی خب برای ما مهمه میدونی که پدرت میترسه مثل کامیار طرف دنبال مال و سلوات باشه مادر من میگم یه برنامه تراحی کردی که اگر نخواد با کسی شریک بشه بفروشتش حداقل صد میلیون ازش برمیدارن دستش به دهنش میرسه بعدم مثلا فکر نمی‌کنم الان دیگه این حرف اهمیتی داشته باشه چطور؟ کامیار رفته باش حرف زده گفته من شوهر سابقشم هنوزم دوستش دارم. رونا. دوستش داری؟ میگم دوستش داری؟ چرا مگه موضوع به این مهمی را از زبون کامیار بشنم؟ تو هم, هم رفتیم بیرون. عله نتونستم بهش بگم. حال همه چیکار کنی؟ دفعه پیشم هم گذاشت رفت و کاری نتونستم بکنی. الان چیکار هم میکنی؟ باشه ادامه میدم. بله منو میخواد باید بیاد جلو. اسون افتادن میچونه من بعد خودمو دیگه خونه دیده رامین زیروار وار این رامین چرا اینجوری بگم میفهمی ندا بابا فردا شما مامان بیاید بریم می خونه که ما امروز دیدیم ببینیم به خدا اگه خوب نبود من دیگه حرفی نمیزنم من خواستم سه مو در نورو جگر بذاری میخوام جای بزرگتر و خوبتر و تراسص بگیرم. او خونه که امروز دیدیم خیلی خوب بود. رامین جان خب همون خونه که ندادید خوشش اومده بگیرین مادر برای این مترو جا داره گرون میگه مامان خب چونه میزنیم اصلا حاضر بی به ببینین. جان میدونم اینجا بهتون سخت میگه ولی برای رفتن عجله نکن یه کمی صبور باشه. بابا تمام اس اساسی من توی انبارری داره میپوسه. م ما دیگه میتونیم جدید بخریم. زندگی من داره نابود میشه این رامین این خیالش نیست ندا من از خدا میکره چی سرطه بریم سر خونه زندگیمون ازت خواستم فقط صبر کنی همین صبر نمی کنم تو دو ساله داری همین من میگی، من همین خونه که امروز دیدیم رو میخوام ندا ندا رامین تو چرا واقعا نمیخوای خونه بگیری از چی نگرانی مادر من خوزن نادرمون چاو مارو چی شد بابا؟ چیز نشد شما بخوا چرا اخماد اینجوری تو همه؟ اجمان؟ پدر من، وقتی من به شما میگم من از وضعیتی که دارم رازیم خوشحالم چرا خیلی این کار میکنی؟ یه شد جواب رد داد طرف برای خودش کسی شده مدیر هتل کلی تشکیلات همه دستگاه داره از پدر داره نگهداری میکنه. مگه دیوونه است که به زندگی با من فکر کنه؟ حرفو چیه بابا؟ طهابت که نمیتونه یک خالقوز بمونه که جوونه وقت شوار کردنشه. شما اینجوری فکر میکنید، ستاره که اینجوری فکر نمیکنه. یه زنی که یه اون مستقل بوده الان چرا باید به خونه زندگی و شوهر داری فکر کنه؟ جواب رد با بله. شما از فکرش بیین بیرون. حرفش نما من چقدر راحت بودم داشتم زندگی رو میکردم دیگه حالا شما دوباره من بردیم به اون سالا اوه به خاطر حرف من نبوده که دیدار مجدد شاید باعثش شده بعدشم از کجای که نظرش بر نگرده بالاخره دوست داشته نظرش بر نمیگرده اومد پیشم حرفش رو زد و رفت دیگه حالا این ماجرا باعث شد من دوباره به ازدواج به شکل جدی تریف فکر کنم فالو ستاره نشد یکی دیگه خدا هست سعی قلبت خودم من میتونم بابا جان ما خدای خودم عد کردم وقتی علی رو زمین گیر شده رو دستت اندم به براتم ای بابا چی نگا الان چه حمرچی قانونی شد بعد رو تا بریم یه حساب مشترک باز کنیم و کارو شروع کنیم. سیستم های دفتر دیدی به نظرت کافی هستن؟ آره دیدم دو تاش به درد کارمون میخوره. یکی معمولی در حد کارهای حسابداری و منشی. دو تا دیگه باید خریداری کنیم به اضافه سرور که از همش مهم تره. اینترنت هم باید عوض کنیم از یه شرکت دیگه بگیریم که سرعتش بهتر باشه. مم قیمت داری؟ آره با یکی از دوستان که مغازه یک داره ازش قیمت گرفتم با حدود دیویسو میلیون یه سری تبلیت و موبایل هم میخوایم که بچه ها باش کار, کار کن که حالا اصلا اولویت نداره بعدا هم میشه دیویسو میلیون. اوه من سریع برم بانک تا نوسته حساب مشترک رو باز کنم این رو کامل برکردی باشه فعلا باشه باشه باشه باشه خدا رامی جانم یه دقیقه ما کارت دارم محلامی باش نمیخوای به بابا بگی نه هنوز خب به نظرم بگویی اونم باید فکر می باشه میباشه نمیتونی دستشو بذار تو پوست کردو که کار سه سال بیشه چون ماغ میکنی میزنه تو سر من خب اندفعه یه جوری بشه اتمین آمده که موفق میشه پیش غرق به پا میشه. خب چاره چیه؟ تازه من فکر کنم طلا و سکه ها پس نمیده. خب من رون پول حساب کرده بودم. اگه مجبور بشم رو میفروشم به ندا چی میگی؟ ندا که اصلا نباید بفهمه. بفهمه واویلاز. رونو حواست باش ها. ترامین تو پول پیش خونه رو داری میاری اینجا. خب ندار رون پول حساب کرده دیگه. چجوری جوری میخی علای جای رنگ کنی بری؟ واسه همین گفتم صبر کنه. چرا فکر کردی پولت سمایه همش برمیگرده؟ من مجبورم این ریسکو بکنم. اگه الان این کار انجام کردم دیگه هیچ وقت نمیتونم این کاری را بندزم. شهرمش. شهره ای ندارم. رونا. نراحتی؟ نه. نکنو ندارم دارم جاتو میگیرم ناراحت شد. بیمازه. چیزی شده؟ نه بعد عواصم بهتون بود اصلا با هم حرف نزدیم وسط جلسه با وکیل کارای ما هم چه حرفه بزنیم اونا تو خواهر منی من خوب میشنم چی شده؟ فیلم کن تو رو خود دارم هیچ. پس وقتی یادی برو تو اینی نگاه خود بندید معلوم که تو صبح نخواه بگی خیلی ناراحت شدم. دیگه چیزی نیست بشه نمیشه دیگه. نمیفهم واقعا ستاره خیلی تو دوستش خیلی عجیبه برام این حرفا رو زده. خب اونم مشکلات خودشو داره دیگه. اون برای خودش من برای خودم. تو که شک مشکلی نداری. چی ندارم خونجان. باز از بومورا مراقبت کنم هاوسام بهش باشه. خب خودش تنهایی از پس کارش برمیاد دیگه. بهونه چه رو بله ولی آینداره نمیشه پیش بینی کرد. این بیماری هم که بالا پایین زیاد داره. م... مگه باز بدتر شده امو جلال چیزی گفته پشمان ممکنه قدرت حرکتشی خورده کمشه از این کمتر دیگه ممکنه دیگه نتونه رابره داره ممکنه خب شاید امو جلال اشتباه میکنه تو با یه دکتر دیگه مشورت کردی پنه مشورت کردم آخرش همینه امروز هم خیلی سخت میتونست بره. خب الان باید چی کار کنی؟ فیلن باید برایش واکر بگیرم ولی بعدا با همین واکرم خیلی سخت میتون را برم پای پیش من اگه بفهمه دق میکنه من نیستم اونجا کمکتون کنم من هستم تو نگرم نباش، پونه ایل از بوشی جانم. بعد سلام بفهم بله خودم آم کردم که. خب ممکنه هیشت از قلم افتاده باشه عطفا الان بود بیان من خیلی امروز کار دارم بسیار خوب باشی چشم بعد رو هم گفتم هربانشون خدافیزم جان هم باید بیره هم حالا بعدا با هم صحبت میکنم باشه هربان تو خدافیزم خوجی موسس. آقا امروز خیلی کار داریم ها. نمی‌تونی یکی دیگه بجای تو ببرتش دکتر؟ خب برو دیگه، دست به جنب آره آره کار تموم شد، برگرد زود. برو لفتش نده. خدا افس. می‌رم اداره برای مزایده، یکی از برگارهام اصلاً نکردم. حالا مرتضی زنگ زد میگه باز بچه‌ش مریض شده، می‌خواد از ماهان سراغ خونش. این جعفر هم که گرفتاره. هیچکی اونجا نیست. گفتم پاش چی بریم اونجا بالا سر کلاوا بزنی. چشمم. منم کارم تموم شد خودم میام. فقط حواست به همش چی باشه، کار خیلی سنگینه. دو سری بار باید بفرستین. قضا و دارو ماهیان میاد با تعویض بگیرین. باشه، خدا فروت راحت بشید. معنمو گفتم. بش خدا فروت. آره تصااب آره. مشترک رو باز کردم و یه مق پول روتم توش بارش بگو با سفارشش بده. بدی <تصفيق> نه نه اونا جابی همهره که همون اول کامل نمیدن که شما به بده وقتی آوردن نصف کرده حالا تا اون موقع به اقیش ما احساب پر میکنم. آره آره من به زنگ می زنم خداافظ خدافه اوقا نظری تو کارکن منترتون بودم آخ. <تص> خیلی هم عصبانین گفتم بگم هووستون باشه. این سفارش هایفهمیمین رو سیگاری چی شد؟ خودشون پیگیری کردم سلام. سفارش های فهمی و رستگاری کوشن هر چی میگردم دکتراشون رو پیدا نمیکنم خودم انجام دادم به آخه به من گفته بودن امروز میخواستم برم کارخونه سفارش بدن میخواستی بری تو این چهار روز نمینداختی رو میزد بری پی کاروی دیگت تو اصلا معلوم از کجایی چی کار میکنی دنبال کارام دیگه تو نه تو شرکتی نه کارخونه کدوم کار رامیم من تو رو میشهستم تو داری یه چیزی رو از من مخفی میکنی او من میخوام بیم این موضوع مهمی رو بهتون بگم بگم فکر کنم دیگه وقتش شده که برای خودم کار کنم مثل ساله برای همین نمیخوستم بهتون بگم میکنه نمی گفتی برای نمی اینکه من هر کاری بخوام بکنم شما با اون موقع مقای سش میکن چون کار تو اینجاست میدونم با هم اختلاف سلیا داریم. ولی من تا کی اینجا ؟ موضوع فقط این نیست ب. میدونین من این کار رو دوست ندارم من دوست ندارم که مدیری فروش و مبل و اضاب اینا باشم. میدونین من دوست دارم دنبال کاری برم که یکم کم با رویم سازگار باشه فقط همین. من نمیخوام این موضوع رو تکرار کنم ولی خب سه سال پیش هم همینو گفتی و کلی ضرر کردی و با دست خالی برگشتی پیشم این دفعه فرق میکنه من با رونا شریک شدم یعنی شما دوتا میخوایم با تناب پوسیده ی این پسر آرش بریم تهیچا؟ ته به این چه حرفی میزنید بابا؟ من کلی تحقیق کردم زیربام این قضیه رو در آوردم، بردم اگر نمیذاشتم که رونا بره جلو زیربام چی؟ کاری که اصلا نیست چی هست؟ چقدر میخوان سرمایه گذاری کنی؟ هیچی دویستی سی ست تومن میلیون؟ باز میخوانی زندگی تو بباد بدی؟ چه بباد دادنی بابا؟ میگم میدونم دارم چیکار کار مشکل اینه که نه تو نه رونا اصلا نمیدونی چی درست چی غلط مشکل میدونین چیه بابا مشکل اینه که شما همیشه میخوند جای ما تصمیم بکرین نمیتونین بابر کنین که ما هم عقلمون میرسه حالا که عقلت میرسه برو هر کاری که دلت میخواد بکن فقط دو روز دیگه بر نگردی دست تو دراز کنی جلوی من اگه کم آوردم یا اشتباه کردم اون وقت من دیگه پشت شما دوتا با نمیزم با نمیزم هیچ وقت این کارو نمی کنم مطمئن باشید هیچ وقت باقا اومدم بگم من آدم پستی نیستم. پست نبودی که مارو تعقیب نمی‌کردی. واقعا فکر می‌کنی باباش منو ول می‌کنه میاد سراغت تو موتوریا آسفالت؟ یه اون رو قلبم داره سنگینی می‌کنه. می‌خوام ازش خلاص شم. با این کینه آخر زندگی تو می‌کنی. اجمال من تو رو خیلی دوست. بعد دیگه واسه چی داریم می‌خویم؟ شاید کم باید می‌دونیم که بریم خاسترو. الهی رسولا چه مالیه؟ اجازه ندیدم کسی خودام نوادم، وضعیتمو تأخیر کنه. تو بعد اینجا؟ بابا تو یاری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 مربونی ایش ای آخریم جورچینی ای ای ای آخریم جورچینی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 من چه میدونستم اومد زود بره چه قروبی داشتن خنده های آخرش آقای خدافزی یه تپش از قلبم مثل پروانه نشست روی سنجاق سرش مهربونی ایاش نازنینی ایاش آخرین تیکین جورچینی ایاش